فصل هم. همین که صبح شد، سران کاهنان به اتفاق مشایخ و ملایان یهود و تمام اعضای شورا با عجله جلسه ای تشکیل دادند. آنها ایسا را با زنجیری بسته و به پیلاتوس تحویل دادند. پیلاتوس از او پرسید، آیا تو پادشاه یهود هستی؟ ایسا جواب داد، همان است که میگویی سران کاهنان اتهامات زیادی به او نسبت دادن، پیلاتوس باز از او پرسید جوابی نداری ببین چه اتهامات زیادی به تو نسبت میدهند اما عیسی جوابی نداد به طوری که باعث تعجب پیلاتوس شد در هر عید فسح پیلاتوس بنا به خواهش مردم یک زندانی را آزاد کرد. در آن زمان مردی معروف به برابا، همراه با یاقیانی که در یک آشوب مرتکب قط شده بودند در زندان بود. مردم پیش پیلاتوس رفتن و از او خواهش کردن که طبق معمول این کار را برایشان انجام دهد. پیلاتوس از ایشان پرسید، آیا میخواهید پادشاه یهود را برای شما آزاد کنم؟ چون اون میدانست که سران کاهنان از روی حسد عیسی را تسلیم کردن. اما سران کاهنان مردم را تحریک کردند که از پیلاتوس بخواهند برابارا برایشان آزاد کند. پیلاتوس بار دیگر به ایشان گفت پس با مردی که او را پادشاه یهودیان مینامید چه کنم؟ آنها در جواب با فریاد گفتند: مسلوبش کن. پیلاتوس پرسید چرا؟ مرتکب چه جنایتی شده است؟ اما آنان شدیدتر فریاد می‌کردند: مصلوبش مسلوبش کن. پس پیلاتوس که مایل بود مردم را راضی نگه دارد، برابا را برای ایشان آزاد کرد و دستور داد ایسا را تازیانه زده، بسپارند تا مسلوب شد. سربازان ایسا را به داخل محبته کاخ فرمانداری بردند و تمام گروهان را جمع کردند. آنها لباس ارقوانی به او پوشانیدن و تاجی از خار بافته روی سرش گذاشتند و به او عدای احترام کرده میگفتند سلام ای پادشاه یهود و با چوب بر سرش می‌زدند و بر رویش آب دهان میانداختند بعد پیش او زانو زده و تعظیم میکردند وقتی استهزاها تمام شد آنها لباس ارغوانی را از تنش درآورده و لباس خودش را به او پوشانیدند و او را بیرون بردند تا مسلوب کنند آنان شخصی را به نام شمعون اهل قیروان پدر اسکندر و روفس که از صحرا به شهر می آمد و از آنجا می گذشت، مجبور کردند که صلیب عیسی را حمل کند آنها عیسی را به محلی به نام جلجتا که معنی آن محل کاسه سر است بردند به او شرابی دادند که آمیخته به داروی به نام مر بود اما او آن را قبول نکرد پس او را بس صلیب میخوب کردند و لباسهایش را بین خود تقسیم نمودند و برای تعیین سهم هر یک قرآن انداختند ساعت نه صبح بود که او را مسلوب کردند تقصیرنامه‌ای برایش به این مضمون نوشتن، پادشاه یهودیان دو نفر راهزن را نیز با او مسلوب کردند یکی در طرف راست و دیگری را در سمت چپ او. بدین طریق آن کلامی که میگوید از خطاکاران محسوب شد تحقق یافت. کسانی که از آنجا می سرهایشان را تکام می و با اهانت به عیسی می ای کسی که می معبد را خراب کنی و در سه روز بسازی حالا از سلی پایین بیا و خودت را نجات بده. همچنین سران کاهنان و ملایان یهود نیز او را مسخره می‌کردند و به یکدیگر میگفتند دیگران را نجات میداد اما نمیتواند خود را نجات دهد حالا این مسیح پادشاه اسرائیل از صلیب پایین بیاید تا ما ببینیم و به او ایمان بیاوریم کسانی هم که با او مصلوب شده بودند به او اهانت می‌کردند در وقت ظهر تاریکی تمام آن سرزمین را فرا گرفت و تا سه ساعت ادامه داشت. در ساعت سه بعد از ظهر ایسا با صدای بلند گفت، ایلی، ایلی، لما سبقتنی؟ یعنی خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ بعضی از حاضران وقتی این را شنیدن، گفتند: نگاه کنید، او الیاس را صدا می کند. یکی از آنها دوید، و اسفنجی را از شراب ترشیده پر کرد و روی نی گذاشت و به او داد تا بنوشد و گفت بگذارید ببینیم آیا الیاس میآید او را پایین بیاورد عیسی فریاد بلندی کشید و جان داد پرده اندرون مقدس معبد از بالا تا پایین دو تکه شد سروانی که در مقابل او ایستاده بود وقتی چگونگی مرگ او را دید گفت حقیقتا این مرد پسر خدا بود در آنجا عده‌ای زن هم بودند که از دور نگاه می‌کردند و در بین آنها مریم مجدلیه و مریم مادر یعقوب کوچک و یوشا و سالومه دیده می‌شدند این زنان وقتی عیسی در جلید بود به او گربیدند و او را کمک می‌کردند بسیاری از زنان دیگر نیز همراه او به او شلیم آمده بودند غروب همان روز که روز تدارک یعنی پیش از روز سبت بود، یوسف از اهل رامه که یکی از اعضای محترم شورای یهود و در انتظار ظهور پادشاهی خدا بود، با کمال شهامت پیش پیلاتوس رفت و جسد ایسا را از او خواست. پیلاتوس باور نمی کرد که ایسا به این زودی مرده باشد. پس به دنبال سروانی که مأمور مصلوب کردن عیسی بود فرستاد و از او پرسید آیا او به همین زودی مرد وقتی پیلاتوس از جانب سروان اطمینان یافت به یوسف اجازه داد که جنازه را ببرد یوسف کتان لطیفی خرید و جنازه عیسی را پایین آورد و در آن پیچید و در مقبرهای که از سنگ تراشیده شده بود قرار داد و سنگی جلوی در آن مریم ماجدالیه و مریم مادر یوشا دیدند که عیسی کجا گذاشته شد.